بزرمیم چه میشه وضعیت روبینز رو بینز رونیویت رو بینز. ده ده شما امتحانات سازمان فنی هفتهی رو الان چه بگم؟ سازمان فنی هفتهی سوالاتش الان که... چون, چون تو تو دو تا دو هم عملی آره چهار تا کپیش من. خب اینا سوالات مشکل خاصی نداره. اوکی. زیاد گیر نکنید. نیست. آره چهار راحت. استیج ماستر سعی کنید. من طالب رو کلاس یادم. بعد پروژه است. اونlara دو که بر جلو سمینار می‌ذاریم و بهتون توضیح میدیم که پروژتون چجوری بنویسید. اولین حدوداً چه که؟ پنج تا که دقیقاً پنج که بگذردید اولاً بیدید، پونزه دیگه خب هر پنج تا یه سابتو. یه ایتا هست هر نه، خود خود که من همه رو با همین آیان 19 تا اون هم میشه، فرق نمی کنید، برای بهتر این 3 تا پنج تا باشه دست ر بعدی فیچون ما, ما میخونیم برای امتحان برای سخت نیست مثلا نگران امتحانه خیلی سوال است در سطح من سوالاتی که تقریبا روز 5 6 سه تا سوال بدن به سازه فنرپی اینا یکی از, از این 5 6 تا ارفان میدین سوال خیلی ساده است چون ما هدف از این کلاس امتحان نیست هدفمون اینه که مفهوم سازی بشه بعد به قول معروف دانش پذیرها یاد بگیرن نه اینکه فقط دست بخونن برای امتحان خب، ببین کلو، ادامه ببین؟ خب، سازماندهی، فارمشن بعدی از مدیریت Organizing یا سازماندهی، دومی کارکرد اساسی مدیریت پس از برنامه‌ریزی است که با سایر کارکردهای مدیریت در تعامل است سازماندهی باعث نظم و ترتیب در ساز ما در سازماندهی تعاملات بین رو میتونیم کنترل بکنیم سازماندهی به همان اندازه در مدیریت مهم است که کابوج شناسی در پزشکی اهمیت داره از اهمیت بسیار بالای برخور داره سازماندهی برای نیست که ایتی آن با تقسیم کار میان افراد در کواه کاری و ایجاد همگی بین آنها به اهداف سازمانی ما می رسیم. ما در سازماندهی دنبال تقسیم کار هستیم خب سازماندهی یعنی جلیان نظم و ترتیب دادن به کار و فعالیت تقسیم و به افراد به منظور انجام دادن کار و تحقق اهداف معین. ما در سازماندهی دنبال این هستیم که هر فرد چه کاری رو باید انجام بده ما در سازماندهی دنبال تعریف شرح شغل و شرح وضایف هستیم وقتی میدیم تقسیم کار دنبال تعریف شرح شغل و شرح وضایف هستیم یه جمعه من بگم بر از این اسمم تک ما در سازماندهی دو تا کانسپت داریم یا مورگانایزیم داریم سازماندهی یه ساختار سازمان داریم به نام استرکچرینگ که این دوتا کاملا با هم متفاوته مفهومش سازماندهی معذرت می‌خوام ساختار سازمان بررسی و بر نتیجه سازماندهیه دقت بکنید دو تا کانسپت اینجا مطرح میشه دو تا کانسپت چطور مطرح میشه یکی سازماندهی یکی ساختار سازمانی ما از سازماندهی که به ساختار سازمانی می رسیم خب ساختار سازمانی در سازماندهی چیست سازماندهی یعنی تعین و تقسیم کار میان افراد ساختار سازمانی یعنی ارتباطات بین واحدها و فرآیندها. حالا داستان این نتشیت با هم بازش بکنیم ما در دنبال تعریف، شرح شوق و شرح وضایف هستیم درسته؟ شرح شوق و شرح وضایف حالا این داستان چه وقت خدمتی توضیح میدن؟ خب ما در ساختار سازمانی دنبال تعریف چارت سازمانی هستیم تعریف چارت سازمانی اوکی؟ نکته آقای سیبن روبینز در کتاب مدیریت میگه یک مدیر باید سه مشخصه اصاسی و اصلی رو داشته باشه یه مدیر The manager should have three important characteristics یه مدیر باید سه مشخصه مهم داشته باشه به اعتقاد شما چون های مدیر باید داشته باشه لیدر باشه،, باشه، رهبری بتونه بکنه خوب چه این مدیر ارشد؟ ببینید من وقتی که میگم مدیر منظور افراد در سازمان منظور وقتی من میگم مدیر رو دقت کنید منظور من فقط مدیر عشق مدیر میانید چه مدیر عملیاتی عملی سرپرست؟ چه اصلا چه یه اپراتور یه نیرو نیروی انسانی باید سه مشخصه اساسی و تو سازمان داشته باشه حالا شما فرض کنید یه مدیر میانی بهتقاط شما چه مشخصهای مهمی رو باید داشته باشه آقای میگه منیجر منیجر یا مدیر باید سه مشخصه اصلی رو داشته باشه این سه مشخصه چیه ریسپانسبিলিتی ریسپانسبিলিتی اتوریتی و پاور ریسپانسبিলিتی اتوریتی و پاور برو بمیموند چیه داستانش یه مدیر باید responsibility داشته باشه یعنی مسئولیت داشته باشه خب responsibility یعنی مسئولیت یه مدیر باید مسئولیت داشته باشه باید مشخص بشه یه مدیر یا یک نفر در چه حوضه های مسئوله متوجه هستید؟ چه حوضه هایی در حقیقت در بقول معروب؟ نه اختیارش باید انجام بده. خب؟ یه مدیر باید اتوریتی داشته باشه اتوریتی یعنی حدود اختیارات حدود اختیارات یه مدیر باید حدود اختیارات داشته باشه اختیارات یه مدیر باید مشخص با باشه اتوریتی خب چاچه چلاجو ریسپانسبিলিتی و اتوریتی توسط سازمانی که به مدیر داده میشه یا به یه نفر داده میشه سازمانی که برای مدیر مشخص میکنه دات ایز یور ریسپانسبیلتیز and that is your authority این و این حدود اختیاراتته یعنی مسئولیت و حدود اختیارات responsibility and authority should be given by organization توسط سازمان داده شود. to individuals به افراد to people به پرسونل وسط سازمان Power یعنی چیه Power -tier. قدرت ایش رایی قدرت ایش قدرت سیبر روبینز میگه مرزه یک مدیر موفق با یک مدیر ناموفق دقیقا پاوره پاور توسط سازمان به فرد داده نمیشه توسط فردی که از سازمان گرفته میشه یعنی فردی که به این پاور رو داشته پاور یعنی یه حس نفوز، یه قدرت یه توانمندی می‌داروی چی دارم می‌گم؟ یه قدرته نه ربطی رب به آتوریجی داره نه ربطی به رسپانسپلیتی داره چون توسط سازمان داده نمیشه It should be taken from organization حسه. یه حسه درمی. یه یه چی؟ حسه درونیه یه, یه حسه درونیه، یه, یه, یه, یه, یه قدرته یه جذبه است طبانه. یه توانایی خواسته بنده چی دارم بتنی خیلی مهمه من پاور رو میگم قدرت خیلی مهمه آی روبینز میگه معرب از یک مدیر پاورشه قدرتشه خب من که در دانشگاه لینکوپین در مالزی بودم و تترس می‌کردیم ارتباط داشتیم خیلی جالب بود دانشگاه 5 تا وایس پرزیدنت داشت 5 داشت خب که اینا تو مختلف در حقیقت چیز داشتن اه بگید داشت. کنترل داشتن مثلا معاونیت اجرایی داشت خب معاونیت آکادمیک داشت خب معاونیت نمیدونم مثلا تحقیق و توسعه داشت خب یه معاونیتی داشت معاونیت بازاریابی مارکتنگ، وایس پریزیدنس خیلی جالبه یه آقای چینی بود قدش یه یکونیم متر یک تا یکونیم متر، فکرم خیلی کوتاه. خب؟ ولی این پاور داشت یعنی حرف که میزد را اصلا ملت میدرزیدن خب؟ نفوز داشت حالا این نفوزش هم تو بالا دستی بود یعنی دانشگاه حرف هم تو هم تو نه صحبت کردنه جذابش کنترل میدونیم؟ این خیلی مهمه بعدا مدیر کارخونه آسان کردم اتفاقا با ایشون گفتم ریسپانسیبلیتی داره اتوریتی فول من بهش دادم ولی پاور رو نداره میخواد حرف بزنه پیت پیت میلرسه می‌لرسه تجربه داره تخصص داره ولی قدرت نفوس نداره حفظ، از اصلا حفظ نمیزنه میدونید و طبیعتا اون تأثیری که باید بر روی پایین دستیاش داشته باشنه نداره تأثیر رو نداره خیلی مهمه من مدیر قبلی شرکت که الان عوضی هیئت مدیره هم هست قبلا جای من مدیر آمین شرکت و پاورش از من بیشتر بود نمیدونم چرا و واقعا نمیدونم چرا حالا من اینو تو قسمت هدایت با تو تمرین می‌خوام تو قسمت لیدرشپ خب در واقع چی میگن چیه ببین مثلا اصول فنون مذاکره من خیلی قوی تره ها مسلما من قوی تره چون مدرسم اصلا مدرس نیست حرف میزنند، میچی میذات او زنم میتونه حرف بزنه ولی نفوذ داره رو پرسونال مثلا من یه سلفت جاستفیکیشن برای نیروی انسانی بیارم که آقا این کار درست، این کار غلطه حالا آ یا طلب بپذیره یا نپذیرن ولی این با یک کلمه، قضیه رو حلش میکنه اینو ما بهش بودیم پاور اقتصابیه جان؟ اقتصابیه من میگم بخش. خیلی زیاد اقتصابیه نه، ذاتی خیلی فکر میکنن ذاتیه، بله اقتصابیه یه بخشیش خیلی زیاد، حالا بهتون میگم خیلی زیاد مثلا، دقت بکنید دلائه یه داره پاور چی میتونه باشه؟ دارلیه پاور چی میتونه باشه؟ از آه. این از آ، بس که بگیم یه قدرتش بالا، چه عاملی باعث میشه یه قدرتش بره بالا؟ یک ارتباط قرار کردن خب، نه نه, نه. خیلی من کلی بدعا نمیگم می‌کنم. صحبت کردن، تحصیلوزه. استهلاك در صحبت. در صحبت. مثلا، ببین اینا اینا اقتصادی، فکر می‌کنی ذاتیه، مثلا این مدیر وقتی بگه نه یعنی نه. استخوال خدا هم از اون بالا بیاد میگه نه. نه نه من نه. اون تاثیر یا یهو دیگه که رو پاور خیلی تاثیر میذاره اسکیل مهارت. مهارت یک مدیر تاثیر قدرتش میذاره. مثلا فرض کن این آقا آدم فنیه. متوجه هستیم تکنیکال اسکیلش قویه. او رو محصولاتی که داره تولید میشه تو سیستم ما کاملا مسلطی میدونه چرا؟ چون مثلا تو سرقت نفت بوده پلسونل هم اینو حس کردن و میدونن و میدونن که در حقیقت ما یه آدم قاخ طرف نیستن تخصص فنیش قدیه سکیلش قدیه یعنی میشه دارم میگم؟ مثلا من خودم رومان مثلا فرض رو قبل حالا الان تدریس خاطرم انجام میدم بلی خب من زمانی که ایران اومد تو یه موسسه‌ای که اجازه بده اسمش هم نگم مدیر آموزش بودم خب خوب اوتوماتیک کی پرورمن بالاست بالا بوده میدونه چرا چون استاد تخیلی من حرف نمیزد به گو مثلا من این سر کلاس بودم گفتم او شرور نمیدگه من میدونم که چی درسته چی غلطه دیگه دیگه نمیخواد برای من رول بازی بکنه مثلا میگه آقا من پرایسینگ استراتژی استراتژی قیمت گذاری رو 3 ساعت جمع کردم بیا این 900 زمان میبره نگفتن 3 ساعته اسکیل خیلی تاثیر میذاره رو پاوری یه نفر. رو پاوری یه نفر کینه دیگه چی تاثیر میذاره؟ منابع مالی. منابع مالی روی قدرت یک نفر تاثیر بسیار زیادی داره. مثلا پرسنل میذارن آقا حقوقشون، رو، پاداشش دست من. خب، میره دست من. اون پاور من از همین خود در سازمان میره بالاتر دیگه. من آخرسعی چکر رو من باید امضا بکنم. اون لیست حقوق رو من باید امضا بکنم. این دیگه. قشای من با همه قضیه یه نفر میتونه بپرسم سراغ باقالیه ما یه نفر رو تنبیش تنبیهش بکنه یعنی این یه چیز درونی بود یه سه دو طرفه بوده. و من می‌دونستم مسائل مالی خیلی حساسه لیست حقوق اومد که من امضا کنم مال اینو من تعمونی امضا نکردم رفتو مالی حقوقها اول پرداخت حقوقی‌ها رو پرداخت این دوش دیوانه میشد خب یه هفته هم دنبال من بود منم که معذوریت بودم و تو معذوریتم تلفن جواب نمیدم و برگشتم دیگه داشت میمرد خب دیگه داشتم گفتم حالا من چه امضارش گفت این راست میگه امضا نشده بیا بیا امضا کردم سند داره خب اینا مهمه اینا رو پاور یک مدیر تأثیر میذاره منو مالی مالی انیوی بکسید قرارداد خیلی مهمه مهمتر است مناره مالی که مسئولیت اختیاره آ अरे شما مسئولیت اختیار هست ولی اون مسئولیت اختیار تأثیر قدرتش خورده نیست تأثیرش بسیار زیاد روی قدرتش خورده منابع چقدر منابع در به بهتون، تو میگم سو ستاس... تثیرم مثلا، دارم بهتون یه که رو یه نفر تاثیر میذاره مرجعیته خب، مرجعیت یعنی چی؟ یعنی، یه موقع شما مدیدی از که یه سازمان رو کردی. فاندر ی اساسمانی. متوجه هستید؟ عنوان اولین مدیری که یه سازمانو اساس کردیم آقا بیل گیتس فاندره مایکروسافت. استیو جابز فاندر مایکروسافت. اینا قدرت مرجعیت دارن. حتی اگر مدیر اجرایی اون شرکتام نباشه، بلد حرفشون بروست. چرا چون فاندر سازمانه. میدونی چی دارم میگم؟ این ماهیتیه. به خاطر همینه که ما میگیم تو بحث مدیریت ریسپانسپیلیتی و آتوریتی جای خود ولی پاور قدرت قدرت در شرطان تأثیر مزاره. ولی بین تمام مواردی که بن خدمت که توضیح دادم که به قدرت تأثیر به اختفادش کدومش از همه مهم‌تره کدومش خیلی مهم‌تره مهارت، منابع مرجعیت، بگید کدومش هست همه خیلی مهم‌تره من خودم بیشتر روی استحقام در صحبت یا پی آر چی کدومش خیلی مهمه یعنی وقتی که یک حرفی رو میزنید با قدرت تمام رو حرف دوده ببین تهوریسیان های مدیریت تهوریسیان های مدیریت دیگه اینا همش جزء منابع قدرت منجاییت منابع مالی، ارتباطات، حتی یه نکته ظاهر واقعا نقطه اوگاتاسین میز رو پاور تاثیر میزاره ظاهر یک نفر حالا اینا من همون تو هدایت به تو هدایت تو کنترل تو لیدرشپ بیت ظاهره یک نفر ببخشید وقتی یه میکاره میخواد میخوان انتخاب بکنه اینا نمیذارم شما مطالعه کردیدن یعنی اگه من بخوام کاندیدیت برای ریاست جمهوری یه سری پارامتر وجود داره یه پارامتر که ساهل طرفه قدش چجوری باشه قد بلند داشته باشه خوشتیپ باشه خوش‌قیافه باشه،, خوش باشه چرا تو رو پاورش تاثیر میزاره چون اون فوزش میذاره ظاهر یک مدیرم به عنوان یک مرجعیت برای قدرت. یه مدیر خوش باشه یا یه مدیری چه هم مثلا تیپ خراب چه بزن بشلر مدیر اینا تاسی و منفی میذاره. حالا به اعتقاد شما این منابع قدرتی که من بهتون گفتم کدومش مهمتر؟ خانم گفت تخصص و مهارت درسته. تئوری های مدیریت یا به تمام منابع قدرت تخصص و مهارت مهم ترس از بقیه وقتی نیروی انسانی که تو آقا متخصصی تو این کار بلدی اون کار رو انجام بدی رسپکتیل داره مثلا من بین بایدهایی که در اختیار من هستن تو شرکت اون مالی آرنگی، تولید، بازاریابی، خرید، واحد بازاریابی خیلی به من رسپکتیل داره می‌دونی چرا تونگی؟ تخصص داره تو کارش می‌شناسه، بعد، فرایند بازاریابی رو استراتژیک اصلا هیچی دیگه مثلا جلسه چیزا باقالی‌ها هستن حالا در که ما دیگه آدم خیلی قشای عملیاتی رو بذاریم هد استراتژ من اصلا خودم ایش کار با دپارتمان استراتژیک ندارم ولی احترام میذاره یعنی حرف من بروه اینا تص... خب واحد فنی خود ظریف تر چرا تو بیو مازندران بندازه ما فنی نیست متخصص آره متخصص اون مثلا مهندسای ها افزار تو این موزه میرن خب anyway. انی تو باسل مدیریت باید پاور توجه کنیم و تو بحث ساختار سازمانی خب؟ ارگانایزیم این بحث پاور رو جدا از بحث ریسپانس و اتوریتی بعد این مقدار رو بولیتر و پرنگتر ببینی. ببینیم بگیمون داستان چیه مطمئنشه ایت حالا؟ ها؟ انامه بهتن از این پاور چگونه پاور به وجود می آید. در سازمان شما یه نکته که بعد مد نظرتون باشه اگه سازمانتون رو می‌خواید داینامیک کنی و رو به جلو هدایت کنی بحث پاور تو سازمانت خیلی قوی بعد بر... نه فقط در رابطه تو با خودت تو سازمانت بعد تمرین بکنی بحث پاور رو تو سازمانت باید تمرین بکنی خب؟ <تصفيق> گلی چی؟ به دارم میزرم من به کارشناس های فروش میگم آقا شما باید اگه میخواید موفق تو فروش باشید بعد پاور داشته باشید حالا اگه اگه اگه تمرین میشه مثلا رو ظاهر این ما خیلی کار میکنیم رو ظاهر کارشناس های فروش به عنوان نمونه من دو ساله کردم. که برای کارشناس های فروش تبلت بگیرن و آیفون بگیرن خب؟ ما سوازمانم، همین در اینکه چرا؟ برای اینکه وقتی میرن در جلسات face to face میشینن تحصیل میذاره، اون پاورشون تحصیل میذاره جزو ظاهر حساب میشه کارشناس فروش ما تو جلسات حضوری حتما برد کربات بزنیم حتما برد کربات بزنه خب؟ برای اینکه آدم مثلا با شرگولی و ت من دیگه بحث پاور در سازمان بعد تمرین بشه. اصول فنون مذاکره، ارتباطات در سازمان بعد تمرین بشه. ما میگیم تخصص و مهارت در پاور مهمه دیگه و تمرین بشه. در رابطه با افراد بعد توسعه پیدا بکنه. درست یا نه؟ ما دیگه میگیم آقا به فرض مثال اگر یک نیروی تخصص و مهارت بالاتری داشته باشه پاورش هم میره بالا. پس باید آموزش ببینه اون نیروی انسانی. پس دورهای آموزشی مهمه. حالا چگونه قابط به وجود می آید در سازمان؟ چگونه توصیعه پیدا می در سازمان؟ ببینیم چجوری پیدا می کنه فرض کن شما یه منشی استخدام کردید مسئول دفتر دفت برای سازمانتون درسته؟ روز اول چه ایتظاری ازش داری؟ سر وقت بیاد آگه مسئول دفتر استخدام کرده ایتظاره چی ازش؟ کارای دفتری رو خوب انجام بده. شرح انجام بده. درست یا نه؟ یعنی انتظاراتی که شما دارید و برآورده بکنه. درسته؟ این انتظارتونه دیگه از مسئول دفتر. نه اینکه مثل این جلبک مسئول دفتر ما من بهش گفتم او بلیط برای من میگه برای بشنورد. اونطور خب فاصله بشنورد تا مشهد زیاده سه ساعت و نیم راهه. گفتم بلیط از مشهد بگیر. من شب قبلش ب럼 که صبح بشنورد جلسه دارم، فرش هم جلسه این بیشون رفته برای من که گرده ساعت 11 شب خب؟ ده شب، یازده شب هم برای من گرفته متوجه. که شب من تو هتل مشهد بخواهم صبح من جلسم چه ساعتی تو گرده ساعت بنده یازده شب رفتم فروتگاه، حالا پروازم یه سر خود دیگه توی ایران پرمازم تخیر نخلی ما ساعت سه صبح رسیدیم هتل تو جولده که هم رفته برای قصر رو گرفته یعنی شکل دیگه سه خب، من سه صبح رسیدم خب، ده صبح من ترسه دارم بوجنه چه ساعتی صبح میاد <تصح> <من در فشان تصح> ها... <چار> صبح <تصح> سه رسیدم، همین یه توش گرفتم خواهد می دام پنج صبح بلند، سرکتون و شیش که من برم سه ساعت این اینا بهش عدمه. انجام شرح بزایع بیدیم، تو انتظار از این دفتر رو زفت همینه دیگه حالا این خانم سه ساله درمان کار می‌کنه، خدا تو منم داره او خب، پله اول یک نیرو رو استخدام می‌کنی، انتظار شما اینه که به شرح بزایع عمل کنه ما اینو در منابع انسانی بهش بیدیم جاب اسپشیالایزیشن، تخصصی کار کردن جاب اسپشیالایزیشن یعنی تخصیصی کار کردن درسته؟ آه؟ روز اولم، انتظاره که دیگه؟ فرض کن این مسئول دفتر سه سال تو سازمان شما داره کار میکنه بعد از سه سال انتظار چیه؟ آه؟ بعد از سه سال بعد از دو سال انتظار انتظاره چیه از نفر؟ ها؟ چند تا سوال داشتی؟ سن کلا اشتباه نکنی. دا، مو تو اسپشالایزیشن، سن با اشتباه نده. ما میگه شهر مضافت بعد عمل بکنی. عمل نکردی تشویق نمیشی، وظیفت انجام بده. اگه عمل نکنی اشتباه بکنی، انتخاب میشی ازت. متوجه هستی؟ بعد از دو سال این مسئوله دفتر، اسپشالایزیشن خیلی خوب داره انجام میشه، تخصصی کار می‌کنه. بعد از دو سال انتظار آقا چیه؟ آه؟ بیتونم تراتر استرخصیزش باشیم آه یعنی چه تراتر استرخصیز؟ یعنی بتونی تو وضعی دیگه با آفرین آفریم با هم آفرین آفرین آره دیگه من بعد از دو سال خیلی مهم هم توجه کنید بعد از دو سال انتظار دارم انتظار دارم مسئول دفتر من جا enlargement بشود یعنی چند وظیفه ای کار کردن سال اگر این اتفاق نیفته فاجعه به وجود میاد دقت کنید من انتظار زدم مسئول دفتر من بعد از دو سال خب حالا اگر مثلا کارشناس فروش تو دفتر نبود مرخصی یفته بتونه تلفنای اون وقتو باشه حدلیتی انجام بده خب یا مثلا کارشناس حسابداری نبود بتونی حدلیتی انجام بده اصلا مخلص کردم یه, یه سوال ازتون دارم این نفر رو من استخدام کردم با حقوق 1 بدون تومن مثلا خب؟ مسئول دفتر بعد از دو سال حقا چقدر میشه؟ مسئول دفتر آه؟ دوانی مثلا همچه دوانی خب اگر های دو سال فقط کار مسئول دفتر انجام بده برای شما توجیح داره امرو مسئول دفتر میدهش داریم؟ نه بگیم برو من این نفر دیگه میاد دوبارو با همون یک پرین یک پرده ایم اگر این اتفاق نیفته شما مجبور میشید، دست بزنید به ترمینیت کردن یا افراج کردن نیروه ساید افکتی که برای سازمان شما داره ترنوبرک هاست یعنی حزینه های رفت آمد پرسونت تو سازمان بحشتگاه که میره بالا سازمان شما که حافظه سازمانی نداره این نفر میره نفر جدید میاد من چهار سال پیش مجبور شدم چهار پنج نفر تو سازمان به خاطر همین قضیه ترمینیت کنم یه نفر بود تو کارخونه خدمات، باره خدمات. اونم از فورا چهار سال پیش، قضیه ما چهار سال پیش میدم. یه ملیون. خدمات یه نمیخوره. حالا چیکار؟ با جارو چای بیاره زنگ زدم به اداره گفتم این چرا یه ملیون بگه 10 سال داره کار میکنه گفتم 10 سال خدمات انجام میده، باره، البته خو اشتباس، ما اسمش نمی‌ذاریم فریزینگ. یعنی فریز شده طرف. خب، گفتم تو بایده دیگه میتونی ازش استفاده کنی کنید گفت نه تخصص نداره بی بیست هواده نه بچه با تا مخراجش یه شما باید توسعه منابع انسانی رو به این, سیس... به این صورت سازمان ببینید و اگر هم به وجود میاد اصل اصلی‌ترین دلیلی که شرکت‌های ما در ایران مجموع می‌شن نسبت اخراج نیروی انسانی اقدام کنن یا پرسنلی که تو سازمان کار یا ما علیت شغلی نداریم و اینو میدونم خب از یه سال، دو سال، سه سال ممکنه سازمان نسبت به اخراجش میداره تا کنه همه قضیه است. ها بعد است. 4 سال، چهار سال انتظاراتون چی هستیم؟ حالا <تصور> فرض کن بوده enlargement هم شده چهار سال سیستم انتظار چی ازش؟ این مدیر تمام عیار باشه مدیر تمام آموزش بده به یه چی باشه؟ یه مدیر تمام آیار باشه باید مدیر بشه نه این بشه مدیر واحدا برای این آدم متخصص می‌دهیم تحلیل‌گر من مسئول دفتری که تو این قسمت قرار بگیره خب؟ یعنی اینقدر تخصص داشته باشه باون تو شردش ما حاضر سه میلیم تومن رو بهش گفتیم در ما اینو ما بهش دیدیم job enrichment این مرحله رو job enrichment job enrichment خب؟ جاپ enrichment یعنی چی؟ چاپ enrichment یعنی چی؟ یعنی عمقی کار کردن تخصصی کار کردن بعضی از مسئول دفترها رو می‌بینی؟ من دیدم با ما، مثلا می‌دونی فران توش پتوچی مسئول دفتره اخو خود رئیسی بیشتر نفوز داره می‌دونی؟ اصلا تصمیم می‌گیره یعنی همه اونجا اینو ما بشه دو طرف یعنی بلده اگه مثل بکنه، تلفن جواب سال دیگه از طرف درست نه؟ بعد بعد سال درسه به جاب انریچ کنه تخصصی کار کنه کارشو بلد باشه میدونی؟ یعنی واقع متخصص تمام ایار باشه. دفترونی کار کردن؟ عمقی و تحلیلی و تحلیلی کار کردن عمقی کار بکنه و تخصیصیم یه راجب تمام کارپنان باید این حط به این ردمت رو شما برای کارپنان ببینید مو انتظار راه اندازه عن کارکونا هم برنده انریچمنت برسن دین دا داینامیک باشن مگر فریز میشن تو سازم هاجر هم که خدمات خوب مثل مثلا بگه من اگر رسیده بود به جاب انلارجمنت یعنی به جز خدمات کارت کار دی میتونسه انجام بده من می‌گردم چه واهید دیگه نمیداختنمش بیرون ما میگیم آقا این جاب انلارجمنت و جاب انریچمنت رو برس که ما بتونیم rotated کنیم اغس از این باری ببرمه تو اون واحد این خیلی مهمه و اگر نه اگر قرار راشد تو تو هنه و اسمت باشی میخواست تو ساخن سا، فریز میشی نه فقط تو ایران، تو خارج از ایران هم همینه فریزینگ خیلی بله تو کار الان اگر اون رو میتید توی خرمات بود و میفترد توی بخش دیگه یک کس... مثلا کسی میاد جای بودی نشه آره, آره. با حقوق کمتر آره. با حقوق کمتر از اون داره میگیره دیگه. به اندازه یه به اون تومن و ازش کار می‌گرفتم اینو با بهش بودی مودا، آره بهتون توضیح بدم می‌تو ای بهمشید، این افزایش با این بازه زمانیه به خاصی داره؟ یعنی نه، نه، نه، نه، من مثال نوشتم، سازمان به سازمان فرق میکنه دیگه ممکن تو یه سازه عجاب اسمش یا ویزشن به جاغ انداروان پنج سال زمان ببره دو سازمان تا 6 سال سایز بعد مدیر ارشد تعیین میکنه که چه نه خب باید ببینید شما دیگه مثلا دیگه آره خب مدیر ارشد تعیین میکنه سازمان تعیین میکنه ولی سازمان به سازمان متفاوته میگم بعد, خب؟ بعد از زبانی 2 سال 3 سال بسگی داره خب آقا بعد از 2 سال و بعد از 6 سال شما چه گزاره از این رو دارید قولید که این معنی آ اه بدکنه این معنی ندات کنه ما انتظاله امپاورمنت رو داریم یعنی انتظار در طرف پاور باشه خب ما مرحله بعدی رو بهش میگیم جاب امپاورمنت جاب امپاورمنت جاب امپاورمنت یعنی تبانی در تصمیم دوستان این خیلی اهمیت داره توانایی در تصمیم گیری یه نیروی درست باید دیسیژن میکر باشه تصمیم گیرنده باشه این یعنی واقعا یکی از مهمترین مواردی که ما تو سازمان همیشه بم می‌کنیم من ببینید اینو ما قبلا گفتم به شما که به این نکته برسید اند استوری یه نیرو باید برسه به job empowerment به اون ساخت سازي در تسلیم گیرنده باشه من با چینی ها کار کردم میدون چه استایلی دارن آدمای عجب قریبیونه او یعنی با اینا یه مدت کار کنی اگه مثل خودشون نباشی دیدونیش اصلا یکی از دلایلی که من خودم از مالزی رو جمع کردم و برگشتم ایران همه قضیه اینا منو دیدونه کرده بودن اول بگم توی سازمان های چینی این که تو ا بقول ما رو مرحله پزشکی ببینید اصلا براش میبنیه مثلا بگی من امروز نیومدم اصلا چرا سر درد رو کرد؟ مثلا تب داشتم اصلا بی معنیه براش چون من برش برخورد کردم یه روز من, نرفتم روز من رفتم سر کار روزی رفتم به رئیسم و من امروز در چون تب داشتم because یو آر نورمال پرسن به من گفت که شما نورمال نیستید گفتم یعنی چی گفتم تو چون نورمال نیستی مریض میشه، غیر نورمال باشی مریض نمیشی خب؟ این سیستمشون اصلا مده هستی برایشون می‌ماری به خاطر هم برد از وحشتناک پیشرفت کردن پیشرفتشون وحشتناکه خب؟ مثال به مدیر چینی شما بری پیش مدیر چینی میگی به یه مشکلی برخورد کردی تووزه کارید میگه به بحشت‌های مدیر من به این مشکل برخورد کردم میشه من راه نمایی کنید می‌دهی چی بهت میگه می‌گه You are fired می‌گه تو اخراجی. عجب جو می میگه من بابا با این از سوال ازت کردم چرا درخواجم میگه وقتی نیروی نشون فکر بکنه تحلیل بکنه تصمیم بگیر و تصمیم و بعد این سازمان رو اینا واقعا نگرش ایشونا بچه‌ها میگن چیکار 할 بکنه اون مدیر انتظار داره نیروی بگه آقا من به این مشکل برخورد کردم فکر کردم این راهکارها به نظرم رسیده یک دو سه چهار و به اعتقاد خود منم راهکار دو بهتره از این راهکاراست نظر شما دیگه آماره من نظر فکر یعنی یعنی فکش. ما مشکلی که توسازمانان داره میره که نیرو فکر نمیکنه تصمیم من میخوام نیرو بگیره نیرو من تصمیم بگیره این منشه جلده که ما اومد توتامه چهار دور. این فران آژانس چه مثلا ما سه مینوطو هم کار واقعا و منم دارم اصلا بیرون برو تو اصلا اصلا نوبت این سوال اصلا بکنی من یه آژانس سه تو من بدهکارم و آژانس رو با من یه کار نمیکنه. خب تصمیم بگیر چیکار واسه منم اصلا پول نداری چیکار که تصمیم میگیری برو سراغ آژانس دیگه انقدر من عمل امام تو اصلا بدهی کار تو کشور همه کار میکن. نمی کنم منم برو سراغ آژانس دیگه سال گذشته من به مالیه می‌خواستم برم مأموریت. من خودم نه، بچا رو می‌خواستم بفرستیم مأموریت فنی آلمان میخواستیم بفرستیم. بعد دادیم که دلار بخرن و به این من رو حق مأموریت بدیم و بگه بده که می‌خواد بره آلمان. ببینم چه جوری شد؟ 5 شنبه بعد از ظهر شد یا چهارشنبه؟ شنبه چه شنب بعد از ظهر شد ساعت پنج بعد از ظهر این احمد بیشو اومد وارد اتاق من شد. نفر مالی، خب؟ اینجوری پول دستش گرفته میگه من این 5000 دلار رو الان چکار بکنم گفتم نمیدونم بیا بذار تو سر من چهار باخ چهارشنبه بعد از داره اون نفره که فردا صبح مثلا ارباز داره من اینو چیکارش بکنم گفتم بیا تو سر من, اون تصمیم من, چکار بکنم؟ من, من تو تسفی میگم ما چیکار بکنیم اینم بعد بفهمم بتونی 5000 دلار با چه علامتی خریدی دیروز می‌خرید ببین اینو باوش میگم قدرت تصمیم داره من مثلا خیلی زدم اینا ما انتظار جسارت داریم نیروی درس به مرحله چاپ امپاورمنت یعنی قدرت در تصمیم گیری تحلیل و تصمیم گیری دروسه در حال باید مدیر رو در جریان بذارید دیگه که فکر نکنه یه موقع مثلا بدون اینکه واش هماهنگی میکاری یه کاری انجام من بعد میاد من اگه من اصلا اینجوری من سازمان یعنی یه چیز چیپو بیان از من سوال بکنن اصلا نمیچس کنن حالا دکتر خب که میخوری، گویی پرزنی رو باشی ما اونجا, امپا... اونجا یه اشکال از مدیره امپاورمنت رو شما میکشی تو امپاورمنت رو میکشی اون یکی جلبت، مدیر کارخونه به من زنی زده میگه من تا استعلام دارم یک هزار تومن داده، دو هزار داده، سه هزار داده ولی هزار خیلی خوبه من نظرم اینه که با هزار کار پونسد میگه آره شما با یک و کار کردی قبلا میگه آره. خوب بودن؟ میگه آره. یا خوب چرا باشم کار شما این چه این چه گیری؟ نیرو باید گیره. به ثباته تسلیم بدیره. مگر نه سازمان محکوم به منده. رتبه تو سه رو به انسانی متوجه شدی. حالا داستانی که وجود داره. سوالی هست؟ بعد اون نیرو باید خودش تحلیل کنه که چه چیزی رو بگه به مدیر و چه چیزی رو نگه دیگه در دیگه ما انتظار داریم نیروی پر امکان مشکل خودش رو حل کنه و اگر نتونه حل کنه پروپوزال ارائه بده. پیشنهاد ارائه بده. بده. بده. بده. راه حل رو ارائه بده. راه های امکام پذیر از نظر خودش ارائه بده. منطقی ام. ولی متأسفانه نیروهای ایرانی سعی می‌کنه تو پای مدن در زمین یکی دیگه. او یه اشتباهه. خب حالا این رود مپ در سطح سازمان بسیار مهم دقت بکنید. بازدید برنامه 600 یه چی دیگه؟ رو سر من دیگه دیگه رسیده با محرف که مده هست نمونه رسیده دیگه با دیگه افراتش گفت دیگه با اون تو دیگه خب، بگیم ادامه بده قضیه رو دقت کنید ما یه بخشی در ساختار سازمانی داریم Organizing سازماندهی، مذارت میخوام به نام تقسیم کار تقسیم کار تقسیم کار مهم است. خب ولی باید کنترل شود. خب تقسیم کار مهم است چون باعث افزایش راندمان می شود. افزایش راندمان رو داره. دقت بکنید. سازمان در سازمان ما یه آندمان داریم خب یه تقسیم کار داریم نداشته تقسیم کار. یعنی سازماندهی، درسته؟ یعنی سازماندهی در سطح سازمان شما کم باشه مشکلی که اینجا به وجود میاد چه مشکلیه؟ بینظمی خب، بی راندمان رو کاهش میده، در سازمان اگر بیش از اندازه ما بچسبیم به بحث تقسیم کار و شرح وظایف چه میدونم چارچوب های مختلف رو تو سازمان به وجود بیاریم باز رانده ما هم کارش فیدار چون یه مشکلی که به وجود میاد به نام از خود بیگانگیه از خود بیگانگی متوجه هستی؟ چون من به یه قضیه برخود کردم به نیروی میگم این انجام بده میگم از شهر وظایفه من نهشن. این میشه از خود پیگانهی ما برای سازماندهی درست باید از خود پیگانهی دوری و از بین نظمی هم دوری کنیم این وسط باشیم تا راندمان در سطح سازمان به نواده اوکی؟ حالا راهبار چیه؟ راه نوشتن شرط شغل و شرط وظیفه. هیلی ما در سطح سازمان باید شرط شرط و شرح وضایف داشت با از خود بیگانگی رو کرد و بی نزمی رو کم بباریم که برادمانه در حسابت سازمان ببریم بارم اوکی؟ شرح شب و شرح وضایف اینو بهش میگه پی دی، اینو بهش میگم جی دی شهر شعر یعنی پوزیشن دیسکریپشن شهر نوزایی یعنی جاب دیسکریپشن پی دی و جی دی سوالی هست؟ هو ادامه بدین؟ فرق شهران با شهران وزاییی چیه؟ سهاره من از را کرده شهر و شهر بزایف. چه فرما میکنه؟ ما شهر هدف بعد ارتباطش میدیم با برده‌ی قسمت‌ها چهر وزیفه‌ی نهبه‌ی رسیدن وزیفه اونه هدف اون تا تو حدی درست اصلا درسته کاملا درسته درست دقیق بکنید ما سازمان ما در ساز یه بخش شرق شغل رو داریم، یه بخش شرق وظایف، پوزیشن دیسکریپشن جاب دیسکریپشن، خب؟ اینا فرقش با هم چیه؟ بله، شرق شغل هدف هدف اصلی یک شغل مشخص می شود. درسته؟ هدف اصلی یک شب مشخص می شود اوکه؟ شرم یعنی نحوه رسیدن به اهداف شو به اهداف یا هدف شو درسته؟ به این مثال داشته باشیم شب مدیر بازاریابی درسته؟ این شب خب شرع شب چیه؟ یعنی پیدیش پیدیش دیسکریپشن چیه؟ چی میتونه باشه؟ خودش چه دیسکریپشنه مورد بازاریابی چی میتونه باشه؟ مورد دریل الزامات کارش هدف هدف اصلیش چیه؟ <تصفح> فروش فروش, <میتونه. تصفح> فروش و بخشش <افضایش> سهم بازار <تصفح> آره آلا میتونه فروش و افزایش سهم بازار ایشا شغل ببینید روز اول که نیرو میاد پیشه برای کار کردن روز اول یک دو شهر چیه؟ بگو من اصلا یک انتظار دارم فروش به افزایش سهم بازیم خب؟ حالا دیگه این نیروس که با روش خودش خلاقیت خودش متوجه هستیم باید بتونیم به هدف برسه خب؟ حالا از این طرف برای افزایش نزم در سطح سازمان بلی افزایش نظر در صورت سازمان ما شرح وضایف رو داریم job description شرح وضایف درسته؟ وی فرمت شرح وضایف چی باید باشه؟ و شرح وضایف ارتباط با شرح شوق داره یعنی جهی فرمت شرع وظایف چی باید باشه؟ چونی باشه یعنی تحمیل خب، داشته؟ چه باید باشه؟ خلاصه ای از شو باید باشه، فهرستی از وظایفش باید باشه، جوزیاتش باشه، الزامات و بخشی برای اطلاعات سرچ کردم، اطلاعات، بدید من، اطلاعات بدید وظایف، چه چه بقوله عروف ترتیب و بعد داشته باشه چه مقالی تو مهمه چه گذاشته بشه بگیم ساعت کاری کار من کار. نه نه نه ساختها رو من میخوا. من فرمت شرح چی باید باشه دقت کنید در شرح بزایه ما چهار پارت فرد داریم دیم چهار قسمت مهمه این چهار قسمت یک eligibility criteria شرایط اکراز eligibility criteria شرایط اتراس. دو responsibility مسئولیت سه authority وجود اختیارات چهار پاور قدرت هایی که این نفر میتونه بایدنی داشته باشه یک دو سه چهار خب؟ یه، یه. یک می یک شرایط احراز احراز eligibility criteria شرایط من احراس آفنی یکی که مدر بازداره یا به در شرکت ما مخواهد باشی چه شرایطی احراس چی برد چی برد چی کار برد چی کار از سم برد, برد باشی آن دوزی میدم دو مسئولیت ریسپانسپیلیتی چهار اختیارات سری چی سه منزوان و آخر قدرت پاور چنین شرح وظایف در سطح سازمان جدی جاب دیسکریپشن در سطح سازمان چهار قسمت در داشته باشه شرایط اخرازمون اون شغل مسئولیت‌هایی که باید انجام بده اختیارات و قدرت او یا پنجمی هم اضافه کنیم رعایت کردن کلیه دستورات مقام مافب آه؟ مقام معظم مقام معظم مقام معظم چرا؟ ما میخوایم الائنیشن رو بیاریم پاییم چرا این رو ننمیزی داستان میخوریم ما توی این قضایه میخوایم الائنیشن رو بیاریم یه آیتا ما این از خود بیگاهیدی رو بیرو خب شرایط احراز در شرح وضایه عجعت اطلاع تو چهار قسمت تحصیلات اکادمی تجربه تجربه کاری تخصص درسته و دوره‌های آموزشی. راست اصالتون رزومه اش گفته می‌شدید. بعد هر شما باید عصب کنید دوره‌های آموزشی. ما در اکیجیت کرایتیری بعد داریم تا تحصیلات آکادمیکش رو بعد مشخص کنیم. تجربه کاری، تخصص دوره آموزش، چیزی که ما مشخص می‌کنیم. رزومه چی حالا؟ این چیزیا رو خودش مشخصه. ما کار ما ما میگیم شغل ما در سازمان شرایط احرازش اینه. حالا شما اصفیه ادعا کلمت بیمون شرط داری یا نه دیگه؟ دیگه در دقیقاً requirements برای که بارد یه شما بشید خب، مثلا، میگیم مدیر و باید لیسانس داشته باشه؟ چهار سال سابقه کار مرتبط، متوجه است. تخصص و مهارتش اصول فنون مذاکره رو خیلی خوب بلد باشه آدم گرونریزی باشه آدم برخوردی باشه نگرش مثبت داشته باشه تخصص تحلیل داشته باشه متوجه هستی و دورهای آموزشی، مثلا مشخص کنیم آقا دوره سیاره رو گزرانده باشه تقلیقات رو گزرانده باشه استراتجیای بازاریابی رو گزرانده باشه اینا اینا مشخص میکنیم و تحت اونبال eligibility criteria میذاریم متوجه هستی چیه؟ م? برای هر شرح وظیفه‌ای، اونم شفاف کنه طرف چه هایی داره. مدیر بازاریابی مسئولیت فروش شرکت رو داره. مسئولیت ترویج برند شرکت رو داره. مسئولیت جلب اعتماد از سمت مشتنی ها رو داره. مسئولیت تاکتیکات بازار رو داره. خب؟ اختیارات مدیر بازاریابی خب؟ مختار است که مثلا استراتژی های قیمت گذاری رو تعیین کنه مدیر بازاریابی اختیار داره هر دک دکسر دک 10 درصد تخفیف بده یعنی چی دارم میگم مدیر بازاریابی اختیار جذب و اخراج پرسنلش رو داره مدیر بازاریابی اختیار مثلا دادن پاداش به پرسنلش رو داره متوجه هستید و در نهایت قدرت پاور مدیر وازاریابی بر قدرت نفوذ در مشتری رو داشته باشه مدیر وازاریابی بر قدرت نفوذ در پرسونلش داشته باشه ببین شرح وضایف رو مشخص کردیم آخرش هم تلق رو میدازه توی هاتسو رعایت کردن کلیه دستورات مقام مافوق حالا اگه مقام مافوق یه چیزی رو بود رو انجام بذاری نه من دیگه شرح وضایف من اینه درست شد؟ اول بده میسیم درست شد؟ مطمئنی شدید شما برای جلسه بعد یه شرح وضعیف یکی از نیموهات رو بردارید یا به اگر ندارید چه پوزیشنی رو مشخص کنید؟ کارشناس حساب داریم شما شرح وضعیف کارشناس فروش رو, رو بریز برای جلسه بعد اوکی؟ بیانید بس کنید منطحا شرح وضعیف که نیمیزی دقیقا این پنج قسمت رو برد داشته باشه درست یادم؟ برای که مشخص یک دو سه و چهار سوالی دارید؟ مشخص رو دیگه؟ نه دیگه یه بردابه همیشه تو بایدو هاورد دارم همه شمایی نداریدنه نه چرا؟ شروع؟ نمایده کلاس کیه؟ نداریم نداشتیم نمایده اصلا ما الان متریار شما ندارید؟ نه داریم یه سری آره نشیدن دوست رو برم یک گونه که نه یک فولدره آره همونه دیگه آره دیگه نه خدا آقای ببین دارم اون چه گرفت آره دیگه؟ چی نداره؟ همه داره چون هم داره؟ فلاش نگاه نچه هم شد یه گروب وایبر داریم اونجا چه؟ یه گروه وایبر داریم شما الان تو وایبر هم گروهی هسته این؟ بله بله شدی؟ بله اونجا؟ من یه خواهش یه هزتون دارم کنید چاش مساله خیلی شما شما شما من این کردم من نه نه نه نه نه نه اتفاقات اینو بسازی میخواد مال اما ما مواجهه با یادداش به شما دادم سه مساله بازدا سیزده سی و دو این هیچ چهار سطح هم ابله برم. 12 شبه برای سری نزارید. خب؟ برای هستم. ابله برم. تو 12 شبه اوکیه. <تصفيق> <اونجا متصاف> <اونجا متصاف> خواهشی که وایبر دارید دیگه؟ کسی هست هشته باشه؟ تو کلاس؟ با سب 5 نفر پلد وایبر شما نراحت کردم بقیه دوستان هم اصابیش میدونم آره ایشون گروه ها تشکیل داده بایدر؟ بایدر. بله, بله. ایشون تشکیل دوستان ها دوستان شماشون هاشون ندارشن توی جا نمیدونم که اصابی آره من متوجه نشم شما گروه تو بایبر تشکیل دادیم؟ من اون تشکیل دادم ولی من همچی چیزی نداریدم تو بایبر بعد فایل های متریال من گذاشتم روحاشتم اگه فایل های که نه نه نه دقیق دوسته یه گروه تو وایبر، همین کلاس، منم هم عد کنید تو وایبر یه گروه باش، حالا اسم گروه هم میتونید بذارید ام یک مسته بویش بذارید حالا هر اسمی که دوست دارید بذارید، منم عد بکنید ارتباطات بین خودتون رو تا آخر دوره ام بیه حفظ بکنید از طریق وایبر منم اضافه بکنه کم جواناتم مدیریتی براتون براتون براتون جو بکنه ایفرستم، مدیریتی براتون براتون براتون براتون اگه البته پس فیلتر نشه استاد. حالا، تشکیل بدید، تشکیل بدید در بیسی خودم بزرگی پس تقسیم کار ما میخوایم در قالب شرح وضایف و شرح شو عمده ترین عیب تقسیم کار آنست که در بلند <تص> مدت باعث؟ از خود پیگانیگی پارکنان یا الائنیشن میشه که ما در حقیقت نمیخونی قضیه اتفاق بیفته بله یعنی سازماندهی که در حقیقت بر اساس شرح وظایف و شرح شغل اتفاق می‌افته وارد استراکچری یا ساختار سازمانی میشه خب بحث ساختار سازمانی چیه دقت کنید ما در بحث ساختار سازمانی یا استراکچری یا ساختار سازمانی دنبال چی هستی؟ چارت سازمانی چارت سازمانی یعنی چی؟ یعنی ارتباطات بین واحدها. نکته ساختار سازمانی به صورت کلی در شرکت‌ها به دو گروه تقسیم بندی میشه یا ارگانیکه یا مکانیک یا ساختار ارگانیکه یا مکانیک فارقه ساختار اوربانیک با مکانیک چیه؟ اورگانیک رو. و او یابو ثابت ثابته محیط. خب، الی بین مکانیک ثابته، بهشام بوروکراتیک، بوروکراسیام باش میاد. آها، دیگه؟ دیگه؟ محیط. فارقه ساختار اوربانیک با مکانیک. دیگه چی توش به دیگه؟ دوستان این برد کردید فرق صافتار اورگانیک با مکانیک چی میتونه باشه؟ ارگانیک خود که در اصلاه تعمالات دستور ها و از بالا مکانیکم خصوصا احتیاط بشه آها اما تو ارگانیک افق هست که دقت করেন با ساختار ارگانیکو رو بهش فلت میگیم خب ساختار مکانیک رو بهش تال میگیم خب در ساختار مکانیک سوجو تصمیم گیریم افزایش پیدا میکنه در ساختار مکانک یا به باید ما میگیم ساختار مکانک ساختاری که بیروکراسی توش زیاده یعنی تصمیم گیرندگان با قول محروف تعدادشون زیاده تصمیم گیرندگان تعدادشون بالاست متوجه تاخوابه قراره در ساختار مکانیک سطوح تصمیمگیری بالاست یعنی تعداد تصمیمگیرندگان گیرندگان افزایش پیدا میکنه تعدادشون زیاده متوجه هستین نه آها خب در این ساختار ما میگه بیوروکراسی خیلی بالاست یعنی یک تصنیمی که میخواد گرفته بشه پنجام نفر بعد نظر بدن این ساختان رو یعنی یه ساختار مکانیک. خب نکته بعدی اسفوسی در این سازمان پایینه بهتون میگم اسفوسی چی؟ اسپن of کنترول مقدوده نظارت یادم نیمید باید گفتم؟ استاولیو روی نیه ها؟ استاولیو روی نیه نه نه نه نه نه نه نه نه های نه نه نه نه نه ها اسوسیلو با کفتم اسپانس آف کنترول در ساختار میکانیک پایینه درسته؟ شکل ساختار مکانیک یه ساختار بلنده متوجه هستید؟ یک ساختار برنده ستا بیشت دانشگاه ها و من آرگان های دولتی دقیقاً دانشگاه ها خیلی زیاده درسته؟ این یک ساختاره مکانیکه یعنی چی؟ این یه نفر خب؟ اسوسی چنده؟ دو. یعنی این مدیر دو تا مدیر زیر دستشه، دو نفر زیر. این اسوسی چنده؟ چند. یکه. باز من میخوام درسته؟ اسوسی چنده؟ یک. یکه. این یکه. درسته؟ یعنی یه نفر زیر نظرش. اسوسی این چنده؟ یه. یکه. یکه. اسوسی این چنده؟ مم. یکه. درسته؟ اسوسی میشه اسپان آف کنترل، هیته نظارت چند نفر سید دست شما دارن کار می‌کنن اوکی؟ متوجه شدی؟ ارگانیک ساختار <تصفح> ارگانیک فلاته؟ مستطع تره؟ متوجه هستید؟ نکته بعدی سازان. افزایش پیدا می کنن تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کارش پیدا می کنن متوجه استید تصمیم سازان افزایش پیدا می کنن تصمیم گیرندگان خواهش پیدا ایدام این ساختار بیروکروسی درش کمتره در این ساختار ما می دیم مثال از ساختار این صاحبه رو اس متوجه هستی؟ الان اس این چنده؟ چهاره اصوسیه این چنده؟ یک دو سه چهار چهار نفر زیده این کار میکنن اس این پوزیشن رو دارم چهاره. چهاره. چهاره. این هم این پوزیشنه متشدید حالا ای که وجود داره یعنی شاید بشه گفت تفاوت اصلی ساختار ارگانیک با مکانیک در اسوسیه در ساختار مکانیک اسوسی پایین در ساختار ارگانیک اسوسی بالا اسپن اف کنترول حیثیتی در ساختار مکانیک تصمیم گیرندگان زیاد تصمیم سازان کم درشن شوستر آلمانی در ساختار ارگانیک تضم سازان تعدادش بیشتر، تضم گیرندگان کمتر. تضم یعنی کارشناس. تضم ساز یعنی متخصص. تضم ساز یعنی کسی که نظر میده، پروپوزال میده. خب، تصمیم گیرنده یعنی کسی که تایید میکنه، اوکی خب، ما در ساختار ارگانیک سعی میکنه تعداد تصمیم، سازاره به بلیم بالا و این صد کنیم تعداد تصمیم گیرندگان رو افزایش بریم در ساختار ارگانیک مزار میخواب آیه ار ارگانیک ولی در ساختار میکانیک برعکسه نمیشه با فود اونش بیدتره آه؟ نمیشه با فود اونش بیدتره نه بستیدیم به شرایط ده خب ساختار ارگانیک با میکانیک authority level در ارگانیک بایدتر یا در میکانیک سطح ا از اتولیتی لیبل در سازمان. کلا مکانی؟ جلو در جلو مکانی؟ جلو مکانی؟ جلو مکانی؟ جلو مکانی؟ جلو مکانی؟ جلو مکانی؟ جلو مکانی؟ بالا یعنی اون پس اختیارات در پایینه بالا. اختیارات ی رپو بس افتاد استین بالا است اختیارات رو بالا ما اصلا البته گفتم میدونم آره در ارگانیک اختیارات پایینه اوکی نوکته بعدی تفویض اختیار دلیگیشن تفویض اختیار در ساختار مکانیک بالاشه پایینه. پایین. پایینه پایینه پایینه در صفتار ارگانیک تفیز اخیار بارانس پایینه بارانس داستان رو؟ باید. حالا بعد جلسه آینده آقای آره شما پیشنهاد بده تو یک سازمان. خب در یک سازمان حالا سازمان هر سازمانی شما عمتی یک سازمانی هستید. درست یا نه؟ ما اینی که سازمان ارگانیک باشه یا مکانیک باشه از چه روشی میتونیم استفاده کنیم که گیری کنیم؟ میزان و مکانیک بودن یک سازمان. حالا شما یک سازمان دارید که درست یا نه؟ میتونه من سازمان شما یا ارگانیک یا مکانیکه؟ ارگانیک چند درصد ارگانیکه، چند درصد میکانیکه؟ چقدر او چند درصد ارگانیکه؟ درصد بدید آقای مهندس، با درصد مشخص کن با چه مدلی، چه فرمولی، ما میتونیم مشخص کنیم یه سازمان، متوجه چند درصد ارگانیکه با قول آید راکر میگه اگه We can't major, we can't manage. اگه ما اندازگیری کنترل کنترول مدیریتم نمیتونیم بکنیم اگر ما میخواهیم سازمانمون ارگانیک تر بشود متوجه هستی وان اندازه کنیم چند درصد ارگانیکه جات اثرای شما سوال کردیم خب که گفتی آقا کدومش بهتره در شرکت های اسمیز اسمال اند میدیوم سایز انترپرایزس خب سازمان ها بیشتر از ساختار ارگانیک داشته باشند و در ساختارهای ال مذهب میخوام بله شرکت های امیز، شرکت های بزرگ تعداد پرسنلش بالای 150 نفر ساختارش بیشتر باید میکانیک بشه متوجه شدید؟ سوالی هست؟ ساید ارگانیک پک چقدر باشه؟ عرض اگر برای شرکت های اسمیز درسته؟ اسمیز تعداد پرسونه چقدر کمتر از 150 درسته؟ SMEs ها حتما باید ساختارشون، ساختار ارگانیک در مکانیک AEs ها باید بیشتر ساختار مکانیک داشته باشد تعداد پرسونه بیش از 150 نفره AEs بیش از 150 نفره به خاطر اینکه شما پرسیدیم مکانیک و ارگانیک SM بیشتر ارگانیک ها بیشتر مکانیک نمیشه توی شرکتی مثلا بالاش ارگانیک باشه پایینش مثلا مکانیک باشه یه دپارتمانی آره یه دپارتمانی مثلا کلن سیستمش مثلا ارگانیک باشه یه هر باشه درصدش از همونجا مشخص میشه شما بررسی کنید من یه مدل. هفته دیگه شما به من اعلام کردی من یه مدل بهتون پیشنهاد میدم اما شما پیشنهاد تو بده که ما چجوری میتونیم بسنجیم الان من میرم تو سازمان شما میام درس میگم سازمان چند درصد ارگانیک چند درصد مکانیکه با مدل میگم شما مدل تو پیشنهاد بده بعد منم پیشنهاد میدم اوکی یک تو سدره سرازکر